فصل هفت زمانی که کنجکاوی ها در مورد گتسبی به اوج خود رسیده بود، چراغهای خانش در یکی از شنبه شبها روشن نشد و گتسبی با همان ابهامی که شروع کرده بود به نقشش عنوان تریمالخیو پایان داد. کم کم متوجه ماشینهایی شدم که مشتاقانه مقابل خانش می لحظهای لحظه می و بعد با ناراحتی از آنجا دور میشدند. ترسیدم مباد و مریض شده باشد به همین خاطر رفتم تا خبر بگیرم. پیشخدمت خدمت ناشنایی که صورت وحشتناکی داشت و با بدگمانی زیرچشمی ورندازم میکرد، مقابل در ظاهر شد. آقای گتسوی مریض شدم؟ نه. و بعد از مکسی کشتار گویا مجبورش کرده باشند گفت اه آقا؟ اه چند وقت نهیدمشون یکم نگران شدم. بهشون بگید آقای کارووی اومد. بیادبانه پرسید. کی؟ کارووی. کاراوی باشه. میگم. در را به هم زد و رفت. خدمتکار فنلاندی هم گفت که گتس بی هفته قبل همه ی خدمتکارهایش را بیرون کرده و تعدادی خدمتکار جدید استخدام کرده که هرگز برای خرید به وستاگ اگ نمی روند مواد و به آنها رشوه بدهند. و مایه را تلفنی تهیه میکنند شاگرد خاربار فروشی گفته که آشپسخانهشان شده عین خوکدانی و به عقیده اهالی روستا آدمهایی که استخدام کرده پیشخدمت نیستند. روز بعد گتسبی به من زنگ زد. پرسیدم از اینجا میرید؟ آه نه رفیق. شنیدم همه پیش خدمت رو بیرون رو ویرون کردیم. نمیخواستم خبری از خونم درس کنه تا دیزی که بیشتر بعد از او میاد پیشم راحت باشه. پس کل آن کاروانسرا چون خوشایند خانم نبوده مثل یک خانه کاغذی فرو ریخته بود. این خدمتکارهای جدید و ولسفایم میخواست کاری برشون بکنه. همشون خوهر و پیش از این یه هتل اداره می‌کردن. گتفی به تقاضای دیزی به من زنگ زده بود که بگوید فردا نهار به خانه دیزی بروم و گفت دوشیز بیکر هم هست نیم ساعت بعد دیزی خودش هم زنگ زد به نظرم میخواست بفهمد که میروم یا نه یک اتفاقی افتاده بود نمیتوانستم قبول کنم که دیزی و گتفی این موقعیت را برای اجرای نمایششان ترتیب دادند. به خصوص آن نمایش سوزناک که توی باغ ترهش را برایم تعریف کرده بود روز بعد آتش از آسمان می بارید. یکی از روزهای آخر تابستان بوده به طور حتم گرم ترین روزش تا واگنی که در آن بودم از تونل درآمد و زیر آفتاب رسید فقط صدای سوت کارخانه بیسکویت ملی بود که سکوت آن ظهر داغ را می شکست های نازک واگن از داغی نزدیک بود آتش بگیرد خانمی که بقل دستم نشسته بود، در پیراهن سفید دکمهدارش عرق می ریخت. آنقدر عرق کرده بود که حتی روزنامهی که در دست داشت خیس شده بود. در نهایت درماندگی، نالهی سرداد و در گرمای بیامان غرق شد. کیف پولش به زمین افتاد. آهی کشید و گفت، ای وای، خسته و وامانده خم شدم و کیف را برداشتم و به دستش دادم. کیف را دور از خودم و از لبه هایش طوری گرفته بودم که نشان دهم هیچ قصد سوی ندارم اما همه اطرافیانم از جمله خود زن با سو زن نگاهم کردند ممور قطار به چهره های آشتا می گفت چه داغه عجب هوایی داغ داغ داغ شما گرمتون نیست نیست؟ نه؟ بلیتم رفت و با لکه ی خیص بزرگی که جای انگشت ممور بود برگشت در این گرما چه کسی اهمیت می داد که این یارو لبهای سرمست چه کسی را بوسیده و سر چه کسی جیب بالای قلبش را مرتوب کرده است؟ در سرسرای خانه بیوکنها باد ملایمی با خود صدای زنگ تلفن را میآورد بیرون پیش من و گتس که دم در ایستاده بودیم. پیش خدمت توی گوشی داد کشید که خود ارباب متاسفم خانم ولی ما نمیتونیم انجامش بدیم هوا اونقدر گرمه که نمیشه به ایچی دست زد درست را گفت بله بله بله میبینم گوشی را سر جایش گذاشت و در حالی که کمی عرق کرده بود آمد سمت ما تا کلاهای حسیری من را تحویل بگیرد بلند گفت خانم توی سالن منتظرتونم و بدون اینکه نیازی باشد راه را با دست نشان داد در این گرما هر حرکت اضافه‌ای به منزله هدر دادن ذخیره عمومی انرژی بود. اتاق به کمک سایبانها خوب سایه شده و تاریک و خنک بود. دیزی و جردن که با لباس‌های سفید مثل دو عروسک ای زیر نسیم زمزمهگر پنکه روی یک کاناپه بزرگ نشسته بودند، با هم گفتند ما نمیتونیم جنب بخوریم. دست برونزه جردن که با کمک پودر سفید شده بود، لحظه ای در دستم آرام گرفت. پرسیدم، آقای تامس بیوکنن قهرمان کجاست؟ در همین حین صدای گرفته و خشن او را که سعی می کرد آرام حرف بزند، از توی سرسرا شنیدم. با تلفن حرف می زد. وسط قالی ارغوانی ایستاد و با چشمهای سهر شده به در و دیوار خیره شد. دیزی به او نگاه کرد و یکی از آن خنده های هیجان انگیز و شیرینش را سر داد و طوفان ریزی از پودر در هوا پخش شد. جردن یواشکی گفت: میگن پای تلفن با دوست دخترش حرف میزنه. ساکت بودیم. صدای توی سرسرا با دلخوری اوج گرفت. خاله خوا، پس من ماشین و بد من هیچ دینی بهت ندارم. و این مزاحماتی که سر نهار درست کردی، چیزی که بیشتر از این تحملش نمیکنم. دیزی با بدبینی گفت گوشی رو بذار دیگه برای اطمینان خیالش گفتم نه نه میذاره یه معامله جدیده که تصادفی در جهریانشم تام محکم در را باز کرد و برای لحظه ای پهنای هیکلش چارچوب در را پوشان و با عجله وارد اتاق شد اگه جناب گتفی دست بزرگ و پهنش را جلو آورد به خوبی تنفرش را پنهان کرده بود خیلی عدی دیدنتون خوشحالم قربان آه نیک دیزی گفت یه نوشیدنی خونک برامون درست کن تام که از اتاق بیرون رفت دیزی بلند شد به سمت گذبی رفت و صورتش را پایین کشید و دهانش را بوسید و به زمزمه گفت میدونی که دوست دارم جردن گفت یادت رفیه خانم اینجا نشسته دیزی نگاهی به دوروبر انداخت و گفت خب تو هم نیکو ببوس چه زن بی‌حیایی دیزی با صدای بلند گفت بیخیال و رفت جلوی شومینه ایستاد بعد یاد گرما افتاد و معذب رفت و نشست روی کاناپه در همین حین پرستار تر و تازه و اوطو ای به همراه یک دختر کوچولو وارد اتاق شد دیزی دستهایش را باز کرد و گفت عزیز دلم بیا پیش مامان که عاشقته ترستار دست بچه را ول کرد و بچه با سرعت طول اتاق را دوید و با خجالت در لباس مادرش فرو رفت عزیز دلم، مامانی موهای تلایی تو کرمپودری کرد حالا، حالا، حالا، پاشو، پاشو، بگو حالتون چطوره؟ منو و در پاسخ دست کوچکش را که با اکراه به سوی مادرات شده بود گرفتیم گتسپی همچنان با تعجب به بچه نگاه می کرد فکر کنم نمیدانست دیزی بچه دارد بچه مشتاقانه به سمت دیزی برگشت و گفت قبل نهار لباسم عوض کردم چون مامانی میخواست رو به مهموناش نشون بده دیزی درون گریبان سفید و کوچولوی دخترک خم شد و گفت تو رؤیای مامانی رؤیای کوچولوی مامانی عزیزم بچه خیلی آرام گفت آره خاله جردنم لباس سفید پوشیده دوستای مامانی رو دوست داری دیزی بچه را به سوی چرخان که رو به بی قرار گرفت. گشنگه نه؟ بابایی کجاست؟ دیزی گفت. به باباش نرفته. به من رفته. موها و قاب صورتش مثل خودمه. دیزی سر جایش روی کناپه نشست. پرستار یک قدم جلو گذاشت و دست بچه را گرفت. بیا پمی خدا فس عزیز دلم. بچه مبادی آداب نگاه بیمیلی به پشت سرش انداخت و دستش را به پرستار داد و از در بیرون کشیده شد در همان لحظه تام با چهار معجون جین پر از یخ به اتاق برگشت گتبی مشروبش را گرفت و با استرابی آشکار گفت خیلی خونک من نظر میان موشیدنی من را با ولع و جرعه های طولانی سر کشیدیم تام سمیمانه گفت یه جای خوندم که خورشید هر سال گرم و گرم تر به نظر به زودی زمین میفته تو خورشید. نه سب کنیم برعکس خورشید هر سال سرد و سردتر میشه بعد به گتس گفت ببریم بیرون دوست دارم یه نگاهی به محوطه و همراهشان به ایوان رفتم. در ساحل سبزابی و گرمای ساکن قایق بادبانی کوچکی نرم نرمک به سوی دریای شاداب می چشم های گتری لحظه آن را دنبال کرد، بعد دستش را بلند کرد و روبروی خلیج را نشان داد و گفت، من درست روبروی شما. آه، همینطوره. نگاه همان گشت روی باخچه های گل و چمن داغ و خزه های پسمانده چله تابستان که در طول ساحل به گرمای طاقت فرسا پشت کرده بودند. کم کم بادبان های سفید قایقی در خونک آسمان آبی به حرکت درآمد. جلوی قایق اقیانوس بود با ساحل بریده بریده و جزیرهای فراوان و متبرک شده خداوند تام سری تکانداد و گفت آره میگن تفری دوست داشتم یه ساعتی با این یارومی چرخیدم. نهار را در اتاق غذاخوری خوردیم که پردههایش را کشیده بودند تا جلوی گرما را بگیرند و بعد با آبجوی خنک هیجانمان را فرو نشاندیم دیزی با صدای بلند گفت امروز پردازار چیکار کنیم؟ همینطور فردا و سی سال بعد. جردن گفت اینقدر بدبین نباش. پاییز که هوا خونک بشه زندگیم از نو شروع میشه. دیزی که چیزی نمونده بود اشکش در بیاید با اصرار گفت هوا اونقدر گرمه که همه چی ریخته به هم. بین همه بریم شهر. صدایش در کشمکش با گرما بود و سعی داشت. شکلی به بیاحساسی و بیهودگی او بدهد. تام داشت به گتسبی می شنیدم که بعضیها استابل استبل و گاراژ کردن اما من نفر اولی هم که گاراژ رو استبل کرده باز دیزی با پافشاری پرسید کی موافقه بریم نیویورک؟ چشمهای گتسپی به سمت دیزی پرکشید دیزی گفت آه شما خیلی متین به نظر می رسید چشمهایشان در همگره خورد و طوری به هم خیره شدند که انگار تنهایند دیزی به زحمت نگاهش را از گتسبی کند و زل زد به میز و تکرار کرد شما همیشه خیلی متین به نظر میرسیدین. در حقیقت دیزی با زبان بیزبانی داشت میگفت که گتسپی را دوست دارد و تام هم شاهد این اطراف بود. ماتش برد. دهانش کمی باز ماند و به گتسبی و بعد به دیزی نگاه کرد. جوری که انگار از مدت ها قبل دیزی را میشناخته و تازه او را به آورده است. دیزی بی خبر از این کشف تام گفت شما شبیه اون مرد توی تبلیغ هستین میدونی که مرد توی تبلیغ تام پرید وسط حرفش خیلی دلم میخواد برم شر زود باشین همه میریم شهر تام بلند شد و هنوز چشمهایش بین گتسبی و همسرش میگشت هیچکس از جایش تکان نخورد زود باشین دیگه صدایش کمی میلرزید چتون شده اگه میخواییم بریم بلند دیگه. با اینکه که سعی داشت بر خودش مسلط باشد وقتی داشت ته گیلاس آب را به لبش میرسند دستش لرزید صدای دیزی ما را بلند کرد و به گذرگاه داغ ماشین کشند دیزی به اعتراض گفت الان میخواییم برین؟ واقعا دوست دارین میخواییم اول یه سیگار بکشیم؟ همه سر نهار سیگارشون کشیدن دیزی با لحنی التماس آمیز گفت بزر خوش باشیم تو این هوای داغ علم شنگی را ننداز. تام جواب نداد دیزی گفت هر جور تو بگی بیا جردن از پله ها رفتن بالا که لباس عوض کنند و ما مردها همانجا ماندیم و با کف کفش شنهای داغ را زیر رو کردیم ماه نغرفام در آسمان غربی گوته بود گذبی میخواست چیزی بگوید که پشیمان شد اما تام دیگر سرش را چرخانده بود و مشتاق نگاهش میکرد. گتسبی از روی ناچاری پرسید استبلاتون اینجا ساختیم؟ نیم کیلومتر پایین تر کنار جاده. آها. سکوت. تام به تندی گفت نمیفهمم چرا واس بریم شهر. این زن هم حجب به سرشون میزنه. دیزی از پنجره بالایی پرسید چیزی برای نوشیدن ببریم؟ تام جواب داد من ویسکی بر و رفت تو گتسپی خوشک و ناراحت رو کرد به من من تو خونه مرد نمیتونم حرف بزنم رفیق. گفتم دیزی لعنه بیپروایی داره صداش پر از مکس کردم گتسپی یک دفعه گفت صداش پر پوله همین طور بود تا حالا این موضوع رو نفهمیده بودم صدایش پر از پول بود پر از دلربایی خستگی ناپذیری که در صدایش بالا و پایین میکرد صدای جرینگ جرینگ پول صدای سنج مانند پول در صدایش موج میزد انگار در قصر سفید بلندی دختر پادشاه است یک دختر طلایی تام در حالی که بطری را در حوله پیچیده بود از امارت بیرون آمد و دیزی و جردن هم دو دنبالش. هر دو کلاه کوچک چسبان فلزگونی گذاشته بودند و شنل‌های سباکی روی بازوهایشان انداخته بودند. گادسبی پیشنهاد داد: همه با ماشین من بریم؟ بعد های چرمی سبز داغ ماشین را لمس کرد و گفت: البته باید تو سایه پارکش می‌کردم. تام پرسید: دنداش استاندارده؟ آره. پس شما ماشین شکاری من سوارشید و بذارید من ماشین شما رو برونم. این پیشنهاد به مزاق گتسبی خوش نیامد و گفت فکر نکنم زیاد بنزین داشته باشه. تام با و شوق گفت کالی بنزین داره. بعد به اقربه بنزین نگاه کرد و گفت اگرم تموم شد جلوی یه داروخونه نگر میدارم. این هر چی هرچی بخوای تو داروخونه ها گیر میاد. بعد از این مزه پرانی بی ربط سکوت حاکم شد. دیزی با اخم تام را برانداز کرد و بعد یک باره حالت وصف ناپذیری به چهره گتس بیدوید که هم ناآشنا بود و هم قابل تشخیص. انگار وصفش را تنها با کلمات شنیده بودم. تام گفت نجام دیزی و او را به سمت ماشین گتس بیهل داد. تو را با این واگن سیرک میبرم شهر. <تصفيق> تام در را باز کرد اما دیزی از حلقه بازوی تام بیرون آمد. تو نیک و جردن و سوارکان ما با شکاری می دزی به طرف گتسبی رفت و کتش را گرفت. من و جردن و تام هم سوار ماشین گتسبی شدیم و روی سندلی های جلو نشستیم. تام دنده‌های ناآشنا را امتحانی کرد و ماشین را از جا پراند توی گرمای طاقت فرسا و آنها پشت سرمان ناپدید شدند. تام گفت: "دیگه؟" و چنان نگاه تیزی به من انداخت که یعنی می‌داند من و جردن از همه ماجرا خبر داریم. گفت: "فکر میکنین مخم تعطیل نه؟" اما بعضی وقتها یه حسی میاد سراغم که به من میگه چیکار کنم شاید باور نکنی اما از وقتی که ساکت شد اتفاقی در درونش رخ داد که او را از لبه چاه تئوری بافی به عقب کشند اینطور ادامه داد یه خورده درباره این یارو تحقیق کردم اگه خبر داشتم میتونستم برم جلوتر جردن به شوخی پرسید یعنی رفتی پیش قیبگو؟ ها؟ تام گیت شده بود و به ما که داشتیم میخندیدیم خیره شد. قیب آره درباره گتسپی. درباره گتسپی؟ نه بابا میگم یه تحقیقات مختصری تو گذشتش کردم. و جردن کمک کرد که و فهمیدی اکسفورد درس خونده؟ تام با باوری گفت اکسفورد؟ اره تا بمیری با اون کت و شلوار سورتش؟ با این حال تو اکسفورد درس خونده؟ تام پوزخندی زد و گفت <تصفح> شاید آکسفورد نیومکسیکو بوده یا همچین جاهایی <تصفح> جردن با دلخوری گفت ببین تام اگه این همه ازش بدت میاد چرا برای نهار دعوتش کردی؟ دیزی دعوتش کرد اونا از قبل ازدواجمون همو میشناختن خدا میدونه کدوم جهنم درهای با فروکش کردن اثر آبجو همه بدخلق شده بودیم و با علم به این موضوع مدتی سکوت کردیم بعد چشم های رنگ رو رفته دکتر اکلبرگ در انتهای جاده نمایان شد و من یاد حرف گذبی در مورد تمام شدن بنزین افتادم. تام گفت، آه، اون قدری هست که برسیم شهر. جردن گفت، همین بغل یه گاراجه. نمیخوام تو این هوای داغ بمونم تو راه. تام بیقرار کوبیت روی ترمز و ترمز دستی را هم کشید و سریدیم زیر تابلوی خاک گرفته ویلسون. چند لحظه بعد صاحب آنجا از مغازه آمد بیرون و با آن چشم های فرو زل زد به ماشین. تام با خشونت گفت چش شده؟ بنزین میخوام که کل کردی برای چی اینجا نگردشتی؟ برای لذت بردن از منظره؟ ویلسون بدون اینکه که از جایش تکان بخورد گفت عالم خوش نیستم. از صبح ریختم به هم. چی شده؟ خالی هم. خالی خالی. تام گفت خودم بنزین بزنم؟ پشت تلفن که به نظر خوب بودی ویلسون به زحمت از چارچوب در جدا شد و در حالی که به سختی نفس میکشید سرپوش باک بنزی را باز کرد زیر نور خورشید صورتش به زردی میزد گفت نمیخواستم سر نهار مزاحم بشم اما بعد جور پول لازم بودم نمیدونستم بالاخره تو میخوای با ماشین کوت چیکار کنی؟ تام گفت: یکی خوشت میاد؟ هفته قبل خریدمش ویلسون در حالی که دستگیره تلمبه را فشار میداد گفت چه زرد خوشرنگی میخوای بخریش ویلسون خنده بیرمقی کرد و گفت شانس بزرگیه نه. از همون اولی یه پولی دستم میگیره حالا چی شد پول لازم شدی دیگه خیلی اینجا موندم میخوام از اینجا برم میخوام با زنم بریم طرف غرب تام جا خورد و با تعجب گفت زنت گفته بریم اون که ده ساله میگه بریم لحظه ای به طولنبه تکیه داد و دستش را سایبان چشمهایش کرد. چه بخواد چه نخواد از اینجا میبرمش. ماشین شکاری مثل برق از کنار ما گذشت. با گرد و خاکی که بلند کرد و دستی که یک لحظه برای ما تکان داد. تام خیلی خوش گفت. چه غشا؟ ویلسون گفت. دو روزه که متوجه موضوع ناجوری شدم. به خاطر همین میخوام برم. برا همین بود که در مورد ماشین شدم. مزاحم چقا بدم؟ یک دلار و بیست. سنت گرمای بیامان و دمنده داشت کلافه امان میکرد و لحظات سختی را پشت سر گذاشتم تا بفهمم که سوئزن ویلسون هنوز متوجه تام نشده تفلک تازه فهمیده بود که مرتل به جز او دنیا دیگر و زندگی دیگری هم دارد و این شک کمرش را شکسته بود ابتدا به ویلسون و بعد به تام که یک ساعت پیش او هم کشف مشابهی کرده بود خیره شدم و به ذهنم رسید که هیچ تفاوتی میان آدم ها از نظر نژادی و درک و فهم به عمق تفاوت میان بیمار و تندرست نیست. ویلسون آنقدر مریض بود که انگار مرتکب گناه شده، گناهی نابخشودنی، انگار دختری بیچاره را باردار کرده بود. تام گفت، ماشین باید نفروشم، فردا عصر تمومش میکنیم. آن مکان همیشه به نوعی آدم را مسترب می کرد، حتی زیر نور خیره کننده بعد از ظهر. وقتی برگشتم به پشت سرم نگاهی انداختم، دیدم که چشمهای قول پیکر دکتر تی جی اکلبرگ همچنان از فراز کپه های خاکستر همه چیز را زیر نظر دارد. اما لحظه بعد متوجه شدم که چشمهای دیگری هم در فاصله چند قدمی ما را برانداز می کند، بردا یکی از پنجره های بالای گاراژ کنار رفته بود و چشم های مرتل ویلسون به ماشین زل زده بود چیز جالب توجه این بود که حواسش نبود خودش هم دیده میش و احساسات مختلف یکی یکی روی صورتش نقش میبست درست مثل نقش های تدریجی که هنگام ظاهر کردن عکس پدیدار میشود حالت کنجکانههی چهرش برایم آشنا بود حالتی بود که در صورت خیلی از زنها دیده بودم اما روی چهره مرتل ویلسان بی هدف و غیرقابل توجیه بود تا اینکه دیدم چشمان مرتل با حسادتی هولناک نه روی تام که روی جردن بیکر مانده است فکر می کرد جردن زن تام است هیچ گیجی مثل گیجی یک ذهن ساده نیست و وقتی داشتیم از آنجا دور می شدیم، تام تازیانه های سوزان حراس را پشت سرش احساس کرد هم زنش و هم معشوقش که تا یک ساعت پیش امن و امان سر جایشان بودند، مثل ماهی به سرعت از زیر دستش سر می‌خوردند. غریزه به او حکم می‌کرد که به دو دلیل پدال گاز را فشار بدهد. یکی رسیدن به دیزی و دیگری پشت سر گذاشتن ویلسون و ما با سرعت 80 کیلومتر در ساعت به سمت آستوریا می‌رفتیم تا اینکه نرده های انکبوتی ترن هوایی ماشین شکاری آبی را دیدیم که آرام در حال حرکت بود. جردن پیشنهاد داد سینما های بزرگ که خیابون خیون پنجم خیلی مرککن من عاشق بعد از نیویورک هم که هیچ کس از خونه در نمیاد یه حالتی داره که آدمو به هوس میندازه انگار انوا و اقسا ها بخواد بیفته تو دامنت کلاممه حو تام را مسترفتر کرد اما پیش از اینکه تام بتواند بهانه به بتراشد ماشین شکاری سرعتش را کم کرد و دیزی به ما اشاره کرد که بزنیم بغل داد زد کجا بری؟ سینما چطوره؟ دیزی با دلخوری گفت هوا خیلی گرمه شما برین ما همین دوروبر بر میچرخیم و بعد فیلم شما رو میبینیم و کوشید کمی هم خوشمزگی کند سر نبش میبینمتون من همونی هم که دو رو با هم میکشه یک کامیون پشت سر ما بوغ بوغ بلندی کشید و تام کلافه گفت اینجا که گر رو بست نیست بیان زال جنوبی سنترال پارک روبروی پلزا. چندین بار سرش را گرداند و به پشت سر نگاه کرد تا ماشین آنها را ببیند و اگر پشت ترافیک گیر می آنقدر سرعتش را کم می کرد که در دید باشند. فکر کنم می ترسید که آنها به یک خیابان فرعی بپیچند و برای همیشه زندگیش بروند بیرون. اما آنها نرفتند و همه کاری کردیم که توضیح چون و چرایش سخت است. یک سوئیت در هتل پلازا کرایه کردیم.